این داستان هانس خوششانس هانس هفت سال آزگار در خدمت استادش بود و پس از پایان هفت سال به اون گفت استاد دوره من تموم شده و باید نزد مادرم برگردم لطفا دست و بدین استاد گفت در تمام این سالها با صداقت و امانت برای من کار کردی. من قدر خدمات تو رو میدونم و وظیفه خودم میدونم دونم که پاداش خیلی خوبی بهت بدم. استاد با گفتن این حرف یک تکه بزرگ طلا به اندازه سر هانس بهش پاداش داد. هانس هم دستمالش رو از جیبش درآورد و تلا رو تو اون پیچید و روی شونش انداخت و راه برگشت به زادگاهش رو در پیش گرفت. همونطوری که با دقت و شمرده قدم برمیداشت، سواری از راه رسید که شاداب و سرحال بود. اسب چوبکی هم داشت. هانس با صدای بلند گفت: چه راحت انگار روی یه صندلی نرم و راحت نشسته باشی بدون اینکه پات به سنگا بخوره و دغدغه‌ای داشته باشی، بیخیال و آسوده داری راه می‌ری؟ سوار که از شنیدن این حرفها خوشش اومده بود پرسید تو هم آدم حسابی به نظر میای چرا پای پیاده راه میری؟» هانس جواب داد مجبورم چیز گرانبهایی رو دارم با خودم حمل میکنم چیزی مثل طلا اما چون سنگینه و روی دوشمه سرمو نمیتونم راست نگهدارم و شونم حسابی داره اذیت میشه سوار گفت حاضری با هم یه معامله بکنی من اسبمو بهت میدم تو هم طلا تو بهم بده هانس گفت با کمال میل ولی به تو گفته باشم بار سنگینی رو باید حمل کنی که راحت نیست سوار از اسب پیاده شد و بسته طلا رو گرفت بعد هم به هانس کمک کرد تا سوار اسب بشه انان اسب رو هم به دستش داد به هانس گفت اگه دلت خواست خیلی تند بتازی، باید انان اسب رو بکشی، لب‌ها تو جفت کنی و بگی هی، هی، هیفون. آنس از اینکه سوار بر اسب شده بود، احساس راحتی می کرد و خوشحال بود. بعد از یه مدت دلش خواست که سرعت بیشتری بهش بده. و همونطور که اون سوار بهش یاد داده بود، انان اسبو کشید و با صدای بلند گفت، هی، هی، هیوون! اسب شروع کرد به جفتک زدن و بالا پایین پریدن و هنوز چند ثانیه نگذشته بود که هانس رو داخل یه چاله پرت کرد. هیوون داشت با سرعت فرار میکرد که یه روستایی که گاوی به همراه داشت، افسارش رو گرفت و کشید و اونو نگه داشت. هانتز که زخمی شده بود از چاله در اومد و به طرف مرد روستایی رفت و گفت چه کاری بود من کردم؟ همچین جونوری با اون سرعت روندن واقعا کار خطرناکیه. نزدیک بود گردنم بشکنه. دیگه حاضر نیستم این اسب بشم. چقدر خوبه که شما یه گاو دارین. با خیال راحت کنارش راه میرین هر روزم از شیر و پنیر و کرش تعمین میشین. حاضرم هرچی دارم بدم تا همچین حیوانی داشته باشم. روستاییم بهش گفت حالا که اینقدر دلت میخواد گاو داشته باشی من حاضرم اونو با اسبت عوض کنم. هانسم از خوشحالی هزار بار خدا رو شکر کرد که صاحب یه گاو شده. اون رو به روستایی داد و روستاییم بلا فاصله روی اون نشست و به سرعت دور شد. اونس که با اطمینان تناب گاو رو در دستش گرفته بود و هی جلوتر میرفت، به این معامله خوب و پرسود فکر می‌کرد. پیش خودش می‌گفت من که نون دارم با خودم میتونم هر قدر دلم بخواد از این شیر گاو کره و پنیر تهیه کنم و باهاش بخورم و هر موقعم که تشنه شد از شیر گاو بنوشم. از خدا بیشتر چی می‌خوام؟ چندی نکسش که به یک مهموخونه رسیدن توقف کرد و چون خیلی گرسنه بود با وله تمام نونی رو که برای شام و ناهارش به همراه داشت رو یک جا خورد آخرین پولش رو هم داد و یک نوشابه خرید و خورد تا بتونه نونا رو پایین ببره بعد از این پرخوری تناب گاو رو به دست گرفت و به طرف روستای زادگاهش براه افتاد در طول راه هوا خیلی گرم شد. نزدیک ظهر وقتی هانس به یک چمنزار رسید گرما اونقدر ازیتش میکرد که زبانش به سقف دهنش چسبیده بود. با خودش گفت چاره ای ندارم باید گاوم و بدوشم و با نوشیدن شیرش اتشم فرو بشونم. هانس تناب گاو رو به یک کنده درخت بست و چون ظرفی به همراه نداشت چرمیش و زیر پستان گاو گرفت و شروع کرد به دوشیدن ولی هرچی پستانهاش رو فشار میداد از شیر خبری نبود. هانس ناراحت شد و امیدش ناامید شد. گاو هم به خشم اومد و لگدی به صورتش زد و اونو بیهوش کناری پرت کرد. هانس به قدری حالش بد بود که نمیدونست کجا افتاده. خوشبختانه بعد از چند ساعت غصابی که بچه خوکی رو توی فرقون حمل میکرد از اونجا رد شد. هانس که دید به طرفش رفت که کمکش کنه. بهش گفت چه کسی این بلا رو سر تو ورده؟ هانس همه ماجرا رو براش تعریف کرد. قصاب مشک آبش رو بهش داد تا کمی آب بنوشه. کمی که از آب نوشید و تشنگیش برطرف شد، بهش گفت گاو تو پیر شده و دیگه شیر نداره گاوی هم که شیر نده اصلا ارزشی نداره یا به درد شخت زدن میخوره یا به درد یه قصاب میخوره همس موهاشو مرتب کرد و گفت عجب چه فکر خوبی چقدر خوب میشه یکی پیدا بشه یه جونور وحشی مثل این گاو رو بکشه و سودی هم آیدش بشه این گاف که به درد لایه جرزم نمیخوره. راستی بچه خوک شما چه چی چیز خوبیه. تازه از گوشتشم میشه سوسیس روز کرد و خورد. قصاب گفت حالا که دوست داری حاضرم خوکم و با گاوت تو عوض کنم. هانسم با شادمانی فریاد زد خدا عوضت بده. بعد گاو رو به قصاب داد و تناب بچه خوک رو ازش گرفت. هانس به راهش ادامه داد. با خودش فکر میکرد که چقدر همه کارا به موقع و همونطور که دلش میخواست انجام گرفته و همه نام و آخرش به خوبی و خوشی به پایان رسیده. همون موقع پسر نوجوانی از اونجا رد میشد که یه قاز سفید رنگ زیبایی زیر بغلش بود. وقتی هانس دید با هم سلام علیک کردند. بعد هانس شروع کرد به صحبت کردن درباره اینکه توی این مدت چقدر خوش اقبال بوده و چه معاملهای سوداوری انجام داده. وقتی نوبت به پسرک رسید توضیح داد که غاز رو برای مراسم قسل تعمید داره میبره. بعد به هانس گفت اینو بلند کن ببین چقدر سنگینه هفتش روز گذشته اونو بستن تا حرکتی نکنه و چاق و چله بشه. وقتی اونو بپزن و بخورن هر کسی که گوشتش رو بخوره از دهنش چربی سرازیر میشه. هانس دهاری که اونو با دست خودش سبک سنگین میکرد گفت واقعا سنگینه ولی بچه خوک من همچی با ارزشم هم نیست. وقتی هانس صحبت میکرد نوجوان به این طرف و اون طرف نگاه کرد. بعد از یه مکس طولانی گفت فکر کنم بچه خوک شما باعث درد سرتونه. تو روستایی که من الان ازش عبور می کردم از آقل کت خدا بچه خوکی رو دوزیده بودن. نکنه این همون بچه خوک باشه که معمورای کت خدا دنبالشن. اگه اون رو دست شما ببینن حسابی به دردسر سر می بهترین کاری که می بکنی اینه که اون رو یه گوشه ببری و قایمش کنی. هانس زودباور از ترس شکه شده بود. با صدای بلند فریاد زد ای خدای بزرگ منو از این مخمسه نجات بده. بعد روشو کرد به نوجوان و گفت تو با روستاهای اطراف خوب آشنا هستی. حاضری تو با خوک من عوض کنی. نوجوان جواب داد کار خطرناکیه ولی دلم نمیخواد تو گرفتار بشی و دست مامورا بیفتی. اینو گفت و ریسمان بچه خوک رو به دستش گرفت. بعد هم قاز رو به هانس داد و به سرعت از اونجا دور شد. هانس هم قاز رو بغل کرد و راه زادگاهش رو در پیش گرفت. همونطوری که میرفت و با خودش میگفت اگر کلا هم رو قازی کنم باید بگم از این معامل سودآورتر وجود نداشته. از گوشت قاز کباب خوبی درست میکنم. چربیشم که زیاده میتونم باهاش یه آبگوشت خوشمزه بپزم. از پرهای سفید و نرمشم میتونم بالش درست کنم و آرام و آسوده روش بخوابم. تازه مادرم چقدر از این معامله خوشحال میشه. هانس از آخرین ده سر راه که رد میشد مرد چاقو تیز کنی رو دید. اون چرخ بزرگ دستگاه چاقو تیز کنی رو میچرخوند و میخوند چاقو <تصفيق> قیچی تیغ تیز میکنم. <تصفيق> هانس ایستاد و نگاهی بهش کرد. اینطور که معلومه با این شروع نشاتی که داری باید کاروبارت خیلی خوب باشه. چاقو تیزگون جواب داد کاروبارم سکه است. راستی این قاز به این خوبی رو از کجا خریدی؟ هانس گفت من نخریدمش. بعد توضیح داد قاز رو با یک خوک عوض کردم خوک رو با گاو، گاو رو با اسب و اسب رو با یک تکه طلا که به اندازه سرم بود. اون تکه طلا هم دست بودش که در ازای هفت سال از استادم گرفتم. چاخو کن گفت معلومه که خوب معامله میکنی آ. فکر کنم تو میتونی ترتیبی بدی که وقتی راه میری پولای تو جیب جیرینگ جیرینگ صدا بده. پخت یارته. هانس گفت خب چطور میتونم اینقدر پولدار بشم؟ چاخو کن جواب داد باید مثل من چاق و تیز کن بشی این حرفه چیز خاصی نمیخواد فقط یه سنگ تیز کن همینو بس بقیه چیزا مهم نیست اینم اون سنگ هرچند کمی که کهنه و فرسوده است من در ازای این سنگ چاق و تیز کنی توقع زیادی ندارم فقط همون گاز و سفیدو به من بدی قبول میکنم چطوره؟ قبول داری؟ هانس گفت نیکیو پرسش من با این سنگ چاقو تیز کن آدم روی کره زمین میشم چون جیبم همیشه پر از پول خواهد بود کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا با گفتن این حرفا قاز رو به اون مرد دادش و سنگ چاقو رو ازش گرفت چاقو تیز یه سنگ چخماق بزرگ رو که همون نزدیکی بود برداشت و گفت حالا یه سنگ بزرگ داری که میتونی روش به اندازه کافی ضربه بزنی و تمام میخوای کج و کهنه رو راست بکنی ولی دقت کن که ازش خوب استفاده کنی هانس سنگ رو برداشت و با رضایت کامل در حالی که چشاش از شادی برق میزد با خودش گفت انگار من خوش اقبال ترین آدم روی زمینم همه چیز به میل من اتفاق افتاد مثل اینکه من خیلی پیش خدا عزیزم چون از صبح تا اون موقع مرتب راه رفته بود خیلی خسته شده بود گرست نشم بود و از وقتی که از خوشحالی داشتن گاو همه آزوگه هاشو خورده بود دیگه چیزی نخورده بود سنگینی سنگ چاقو تیز کنی انقدر خستش کرده بود که نمیزاش قدم از قدم برداره ناگه چیزی به فکرش رسید گفت فایده حمله این سنگ چیه در همین موقع به یک جویبار رسید تصمیم گرفت نفسی بکشه و کمی استراحت کنه برای که سنگ مزاحمش نباشه اون رو لبه جویبار گذاشت بعد هم خم شد که کمی آب بنوشه اما دستش خورد به سنگ و سنگ افتاد توی آب. همین که هانس دید سنگ در آب افتاده، با خوشحالی زانو زد و در حالی که اشک شادی از چشمش حلقه زده بود، خدا رو شکر کرد که از بهترین راه ممکن و بدون کمترین زحمت از شر این سنگ سنگین خلاص شده. هانس با صدای بلند فریاد زد هیچ تنابنده ای در زیر آفتاب خدا به خوششانسی و خوش اقبالی من نیست. بعد سرشار از خوشدلی و سبکبالی اقبالی شاهد و به طرف خانه مادرش حرکت کرد.